یادم میآید در گذرگاه‌های های باغ اطراف اکواریوم قدم میزدیم برای نفس کشیدن احتیاج به هوای آزاد داشتم. همیشه در یک جور تنگی کنترل شده زندگی میکردم. شاید هم عادت کرده بودم کوتاه نفس بکشم و در مصرف اکسیژن صرف جویی کنم. به خصوص که نباید به خودم اجازه میدادم از خفه شدن به وحشت بیافتم. نه باید به تنفس کتا و منظم ادامه میدادم. باید منتظر میماندم تا ژاکت سنگین جنونی که ریه‌هایم را فشار میداد کم کم متلاشی شود یا کسی پیدا شود و آن را از تنم در بیاورد. ولی آن شب توی باغ برای اولین بار نفس عمیق کشیدم. بعد از مدت‌ها از زمان فسومرن لافوره از دورانی که فراموشش کرده بودم. رسیده بودیم جلو وریوم توی تاریکی نمیشد ساختمان را خوب تشخیص داد. پرسیدم یا قبلا اینجا را دیده هیچ وقت. پس یکی از همین روزا شما رو میبرم دیدنش. برنامه ریزی کار روحی بخشی است بازویم را گرفته بود و من ماهی های رنگارنگ را کنارمان پشت شیشه ها در تاریکی و سکوت تصور میکردم. پایم درد میکرد و کمی میلنگیدم ولی او هم روی پیشانیش خراشیده بود. از خودم پرسیدم سمت کدام آینده در حال حرکیم؟ احساس میکردم قبلا همانجا و همان ساعت در دوران دیگری با هم قدم زده ایم. در گذرگاهها که پیش میرفتیم دیگر نمیدانستم کجایم؟ تقریبا رسیده بودیم نوک تپه بالای سرمان توده سیاه یکی از برچ های کناری کاخ دیده و شاید هم هتل بزرگی که ایستگاه ورزش های زمستانی آنگادین بود هرگز در هوایی با انخونکی و متبویی نفس نکشیده بودم با تراوت دلچسبی توی ریاه هایم نفوز می کرد. بله انگار روی کوه بودیم در ارتفاع بسیار زیاد گفت سردتو نیست شاید بهتر باشه برگردیم یقه بالا آمده ی منتوش را محکم گرفته بود کجا برگردیم؟ چند ثانیه ی دو دل ماندم البته می رویم طرف خیابانی که سمت سن سرازیر می شود به ساختمان سولیر پرسیدم آیا قرار است مدت زیادی آنجا بماند؟ تقریبا یک ماه و مراوسکی آه، تمام این مدت اون تو پاریس نیست دوباره به نظرم رسید این اسم برایم آشناست یعنی از زبان پدرم شنیده بودم به مردی فکر کردم که یک روز به هتل پاریم زنگ زده بود و صدایش به خاطر پارازیدهای خط بریده بریده به گوش می رسید گی روسوت. می گفت با پدرم دفتر داشته رسوت مراوسکی از قرار معلوم او هم دفتر داشت. همهشان دفتر داشتند. پرسیدم حالا با این مراوزگی که همین طور دم دستی به او می میگویند چه کار می بکند. می در موردش بیشتر بدونم. فکر میکنم چیزی رو مخفی میکنین. ساکت ماند. بعد ناگهان گفت. نه خیر. چیزی رو مخفی نمیکنم. زندگی ساده تر از اون چیزیه که تو فکر می برای اولین بار به من تو گفته بود بازویم را گرفته بود و کنار ساختمان اکواریوم راه می هوا برای نفس کشیدن همچنان سرد و سبک بود قبل از رد شدن از خیابان لب پیاده رو ایستادم اتومبیل را جلوی خانه تماشا کردم آن شب وقتی تنها اینجا آمدم به نظرم رسیده بود ساختمان متروک است و خیابان آنقدر به نظرم سوت و کور آمده بود که انگار دیگر کسی از آنجا رد نمیشد. دوباره گفت ساختمان تراس بزرگی دارد و از آنجا تمام پاریس دیده می شود. آسانسور آرام آرام بالا می رفت. دستش را روی شانه هم گذاشت و چیزی در گوشم گفت چراغ آسانسور خاموش شد بالای سرمان فقط چراغ خواب روشن مانده بود